سخن پاگانی حالا نمیدونم کیم، اما هرچه هست دیگه بیشعور نیستم نیل یک بیشعور پاک شده در طول تاریخ، انواع و اقسام راهکارها برای اصلاح بیشعورها به کار رفته در دوران باستان، بیشورهای بیچاره رو به عنوان برده میفروختند یا در کشتی پارویی به کار میگرند. بیشور تمام ایار رو گردن میزدند یا زنده به گور میکردند در قرون وستا اونا رو بر روی صلیب زنده زنده میسزونند. این فرضیه که تمام کسایی که در آن دوران بر روی صلیب در آتش سوختن زنان جادوگر بودند اشتباهه. بعضی از اونا بیشورای تمام عیاری بودند که از فرط فضولی و تکبر و خیر سری زیاد به خرمن هیزم نزدیک شدن و سرانجام آتیش گرفتند. با رشد بشر، این رفتارا تا حدود بسیاری انسانی تر شد. پیوریتنها تناب بگردن گردن ها و به طور متوالی اونا را به رودخونه پرتاب می‌کردند و بیرون می‌کشیدند. اندکی بعد، زالو انداختن به تن اونا را شد، مدتی هم بیشورارا را مجبور می‌کردند که از علامت سرخ استفاده کنند که بر این اساس باید حرف ایرو رو که مشخصه بیشور یا همون اسهول بود روی لباساشون نصب می‌کردند مجازاتی که بعدا برای زناکاران در نظر گرفته شد این نوع راهکارها مزایای خودشون رو داشتن ولی مسلما عوارض ترسناکی هم داشتن خوشبختانه پیشرفت روانشناسی مدرن ما را قادر ساخته تا برای درمان بیشورهای مدرن از آخرین دستاوردهای رواندرمانی استفاده کنیم البته چالش های درمان بیشورها هنوز بسیار زیاده. معمولا کسایی که خودشون درمان بیشعوری رو تجربه نکردن، بسیار بعیده که بتونن درک کنن یه بیشعور تحت درمان چه عذاب علیمی رو متحمل میشه تا بتونه وجدان، احساس ندامت، حس همدردی با دیگران و کلن ملزومات باشعور بودن رو در خودش زنده کنه. بیشعورایی که در حال درمانن، تغییرات اساسی در هویت، ارزشها و رفتار خودشون رو تجربه میکنن. بسیاری از اونا دوستان و حتی کارشون رو در این پروسه از دست میدن خانواده هاشون گیج و مشکوک میشن و تا مدت ها هیچ کس نمیفهمه اونا کیان حتی خودشون تحمل این آشفتگی فکری و احساسی بسیار مشکله اما بیشعور برای درمانش باید تحمل بیش از این رو هم داشته باشه او باید این توانایی رو کسب کنه که بدون آدتهای روزمرش به دروغ گویی مرد و مازاری و پشت هم اندازی روزگار بگذرونه از برج تکبر خود بزرگ بینش بیرون بیاد و هر روز مثل آدمای معمولی دور برش کار کنه مهربان و یاری رسان باشه نه اینکه با انداختن تقصیرها به گردن دیگران خودش رو خلاص کنه حتی باید لبخندهای استهزا آمیزش رو هم کنار بگذره و از لذت اون چشم بپوشه او باید به تنهایی این وضعیت دشوار رو تحمل کنه بدیهیه که این افراد به درک و حمایت ما نیاز دارند. ما دیگه در زمان بربرها که گمان میشد شد بیشعوری فقط یک نقص است زندگی نمی کنیم. ما حالا پیشرفت کردیم و می دونیم که بیشعوری یک بیماری واگیر داره. همه ما در معرض آلودگی هستیم و باید برای درمان و پیشگیری اون کمک کنیم. زندگی یک بیشعور تحت درمان نبردی دائمی با خطر بازگشت بیشعوریه. او باید یاد بگیره که با احساس گناه و پشیمانیش دائم کلنجار نره و اگر زندگی بدون کلنجار رفتن براش غیر ممکنه با مشکلات و مسائب زندگی کلنجار بره. البته بدون تقلب در رقابت. اما لذت باشعور شدن ارزش تمام این سختی ها رو داره. اشتیاق عضو شدن در جامعه ای که خصلت هایی مثل اعتماد، حس همکاری، مسئولیت پذیری و وفاداری امتیاز محسوب میشن نه اسباب تحقیر و تمسخر، بیشعور تحت درمان رو تشویق میکنه تا سختی های درمان رو بهتر تحمل کنه و به روند بهبودی و پاکسازی خودش ادامه بده. من میخواستم این کتاب رو سالها قبل از این بنویسم. اما اون زمان هنوز خودم به طور کامل پاک نشده بودم و خوشحالم که این کار رو نکردم اگه در اون زمان این کتاب رو نوشته بودم چراغ راهی برای بیشورهای سراسر دنیا نمیشد، بلکه در بهترین حالت مشتی از خاطرات واقعی خودم از زندگی احمقانهام می بود. واقعیت تلخ اینه که بوی گند بیشوری از سراسر دنیای ما به مشام میرسه و اگر برای زدودن اون کاری نکنیم به فاجعه خواهد انجامید فاجعه اون وقتیه که دیگه این بورو از فرط تکرار و عادت احساس نکنیم بویی حس نمی کنی.